زمانی در روزگاری پادشاه و ملکه ای زندگی میکردند که دلشون میخواست پسری داشته باشند چون صاحب پسری نشدند روزی توی عبادتگاه سن جیمز قسم خوردن که اگر دعاشون مستجاب بشه همین که پسرشون 18 سالگی رو باشه سر بذاره اونو به عنوان زائر به عبادتگاهش بفرستند و در نهایت دلخوشی توی شامگاهی که پادشاه از شکار به قصر برمیگشت چشمش به نوزادی افتاد که توی گهفاره خوابیده بود همه مردم جلوی قصر جمع شدند تا نگاهی به بچه بندازند همه یک دل و یک زبون میگفتند که اون خوشکل ترین بچه‌ایه که تا اون زمان دیده بودن. البته مردم همیشه از این حرفها میزدند اما این بار همه حرفهاشون درست بود هر روز که میگذشت پسر بزرگتر و قوی تر می شد تا به دوازده سالگی رسید. پادشاه از دنیا رفت و شاهزاده با مادرش تنها شد. به این ترتیب شیش سال دیگه هم گذشت و پسر به هیچ سالگی خودش نزدیک شد. غم و توی قلب ملکه چنگ انداخت چون شاهزاده نور چشمش بود و چطور میتونست اون را راهی سفری زیارتی بکنه؟ سر راهش خطرهایی بود. ملکه روز به روز اندوهگین و قصدارتر می شد و هر وقت تنها بود به تلخی گریه میکرد. ملکه فکر می کرد که هیچ کس خبری از غم و نداره. اما یه روز صبح پسرش از اون پرسید مادر چرا تمام روز گریه می کنی؟ ملکه جواب داد چیزی نیست پسرم. البته توی این جهان بزرگ از موضوعی رنج میبرم. شاهزاده پرسید، از چه چی چیزی؟ آیا نگران خزانه و اموالت هستی؟ اجازه بده خودم همه چیز را زیر نظر بگیرم. ملکه از این حرف خوشش اومد. شاهزاده از پایتخت خارج شد و به نواهی جلگی کشورش، جایی که مادرش مالک زمینهای بزرگی بود، رفت. همه چیز و رو به راه بود. پس از رسیدگی به اموال مادرش شاد و سر حال به قصر برگشت و گفت مادر دست از غم و قصه بردار و شاد باش زمین هات به خوبی و بهتر از هر جای دیگه ای داره اداره میشه من به همه جا سر زدم گله سالم و سر هم زورتزار هات پربارن و به زودی برای درو آماده میشن ملک گفت واقعا خبرهای خوبیه اما ظاهرا تغییری توی وضع حال اون پیش نیامد و هم روز بعد صدای لابه و نالش بلندتر از دفعه پیش به گوش رسید. پسرش نامیدانه گفت مادر جان، اگه ای علت این همه ناراحتی و قم و نگی قصر رو ترک میکنم و سر به پهندشت جهان میذارم. ملکه نالهکنان گفت آه پسرم، پسر عزیزم فکر جدایی است و وقتی که هیچ دستالگی تموم میشه باعث رنج و عذابم شده. پیش از این که به دنیا بیای من و پدر توی عبادتگاه سن جیمز قسم یاد کردیم که پس از هیچ دستالگیت تو رو برای زیارت به اونجا بفرستیم. چیزی به هیچ سالگی نمونده و به زودی باید از اینجا بری. یک سال تموم تو رو نخواهم دید و چشم ها به دیدارت روشن نمیشه. بعد خیلی دور و سر راهش خطرهای زیادیه. شاهزاده گفت یعنی yani, راه دیگری نیست که زودتر برسم اینقدر خودت رو عذاب نده. فقط مردهها ها بر نمی گردم. تا زمانی که زنده هم خیالت راحت باشه که زود بر میگردم. اون با این حرفها و طرز رفتار پسندیده مادرش رو دلداری داد. درست روزی که به هیچ سالگی رسید بهترین اسب سبر رو جلوی دروازه قصر آوردن. اون از مادر اجازه سفر گرفت و گفت مادر جان، بدرود، من به یاری دست سرنوشت امیدوارم که هشت زودتر برگردم. منکه گریه کرد و عشق گناهاش رو خیست کرد. و در حالی که گریه و زاری میکرد سه تا سیب از جیب رداش درآورد و اونا به پسرش داد و گفت پسرم این سیبها رو نگه رو به اون چه میگم گوش جام بسپار. توی این سفر دراز به دوست نیاز داری. اگر به مردی جوون برخورد کردی که از اون خوشت اومد اون رو با خودت همراه کن. موقعی که به مهمون سرایی رسیدی اون رو هم دعوت کن که با تو غذا بخوره. بعد از خوردن غذا یکی از سیبها رو به دو قسمت نابرابر برش بده. و از اون بخواه که یکی رو برداره. اگر اون تکی بزرگتر رو برداشت از اونجا داشا چون اون برا دوست واقعی نمیشه. اگه تکی کوچیکتر رو برداشت اون رو مثل برادر خودت بدون و هرچی داری رو با اون قسمت کن. اون فرزندش رو توی آغوش گرفت و براش دعای خیر کرد. پسر سوار اسب شد و به پیش پسر جوان راه درازی رو رفت و با هیچ کس رو روبرو نشد سرانجام توی فاصله یک حمی دو چشمش به مرد جوانی افتاد که تقریبا هم سال خودش بود اون به پهلوهای اسبش صد و تونتر رفت تا به جوون غریبه برسه جوان از اون پرسید دوست خوبم کجا میری شاه جواب داد برای زیارت به معبد سن جیمز میرم پیش از اون که به دنیا بیام پدر و مادرم نسل کردن، همین که هیچ ساله شدم به نشونه بنابورد شدن حاجتشون منو به زیارت و خدمت گذاری محبت بفرستن. جوانه تازه وارد گفت، من هم وضعی مثل تو دارم. حالا که هر دو هم سفریم، پس بهتره که در طول سفر همراه بشیم. شانس از این پیشنهاد خوشش اومد و حواشش رو جمع کرد که شرط دوستی، با تازه وارد رو به جا بیاره وقتش که رسید دوستیش رو با قسمت کردن سیب به سنجر. کم کم به مهمون سرایی نزدیک شدن با دیدن اونجا پسر پادشاه گفت گرست نه. به مهمون سرا بریم و غذایی بخوریم هم سفرش هم گرسنه نبود پس هر دو پشت میزی نشستن و سفارش غذا دادن وقتی سیر شدن پسر پادشاه یکی از سیبها رو عجیبش درآورد و اون رو به دو نیمه برید نیمهی بزرگ و نیمه کوچیک به جوون غریبه تعارف کرد اون هم نیمه بزرگ رو برداشت شانزاده پیش خودش فکر کرد او برام دوست واقعی باشه و برای اینکه از همسفری با اون جدا بشه خودش رو به بیماری زد و گفت که نمیتونه به سفر ادامه بده و باید استراحت کنه دیگری گفت، بسیار خوب، اما من نمیتونم صبر کنم، عجله دارم. پس خداحافظ شانست داده که دید خیلی راحتتر از او جدا شده، از ته دل خوشحال بود و از اون خداحافظی کرد. اون مدتی توی مهمون سرامون تا جوان غریبه به قدر کافی از اونجا دور بشه. بعد اسبش رو آماده کرد و به سفرش ادامه داد. اونکه آدمی بهجوش و اجتماعی بود تنها سفر کردن براش سخت و دشوار بود با خودش فکر کرد اکاشی دوست واقعی پیدا کنم تا ضمن همصحبتی راه سفر کوتاهتر بشه من از تنهایی بیزارم به زودی به مرد جوون دیگهای رسید ایستاد و پرسید دوست خوبم کجا میری پسر پادشاه از مقصدش پرسید و جوون غریبه گفت که برای زیارت به معبد میره. شاهزاده گفت اون هم به معبد میره تا نظر پدر مادرش رو که موقعی به دنیا اومده برآورده کنه. شاهزاده گفت پس راه سفرمون یکیه. حالا که تنها نیستیم، ضمن هم صحبتی، راه سفر هم کوتاهتر میشه. سر آخر به مهمون سرایی رسیدن. شاهزاده گفت خیلی گرسنم به مهمون سرا بریم و غذایی بخوریم. بعد از اینکه غذا خوردن شاهزاده سیب دوم رو عجیبش جیبش در آورد و او را دو نیمه کرد. یکی بزرگ و اون یکی کوچیک. و به دوست تازه یافتش تارف کرد. اون هم نیمه بزرگ را برداشت و خورد. پسر پادشاه فکر کرد تا هم دوست واقعی نیستی و ما نمود کرد که حالش خوب نیست تا باید استراحت کنه. جوون غریبه تنها به راه افتاد. بعد از اینکه به قدر کافی دور شد شاهزاده هم سفرش رو شروع کرد. سفرش از دفعه پیش طولانی تر و کسر تر به نظر می رسید. قمگین آهی شید و با خودش فکر کرد می دوست واقعی که برا مثل برادر باشه پیدا کنم. بعد از مدتی متوجه که پسر جوونی شد که توی همون راه پیش می وقتی به اون رسید پسر جوون پرسید دوست خوبم کجا میری؟ و برای بار سوم همه چیز رو درباره سویند پدر و مدرش رو علت سفر به معبد برای جوون غریبه توضیح داد. جوون تازه وارد شادمانه گفت: عجب وضع منم درست مثل توه. پسر پادشاه گفت: پس هر دو هم سفریم اونا به راه افتادن. به نظر می که راه زیر پاهاشون، تندو زود به عقب میره چون جوون غریبه بسیار زنده دل و خوش صحبت بود اون به قدری صمیمانه رفتار کرد که شاهزاده داشت امیدوار میشد که میتونه روی دوستیش حساب کنه با این فکر که به سرش راه افتاده بود اونها به مهمونسرای کنار راه رسیدن پسر پادشاه به همراهش گفت گرستم بیا به مهمونسرا بریم و چیزی بخوریم اونا پشت میزی نشستن و بعد از اینکه غذاشون رو خوردن شاهزاده سیب سوم رو عجیبش در آورد و نابرابر نصف کرد و هر دوتیکر رو جلوی همراهش گذاشت تا تکی رو برداره. جوونه تازهواره دیکه تیکه قشیک‌تر رو برداشت. قلب پسر پادشاه به وجد و سرور اومد. چون جوون غریبه همون کسی بود که دنبالش میگشت. اون با صدای بلند گفت: جوونه خوب ما با هم برادریم. اون چه من دارم مال تو و اون چه که تو داری مال من. در کنار هم راه روزیرا می‌ذاریم تا به عبادتگاه برسیم. اگه یکی از ما دو نفر در طول راه از دنیا بره، دیگری باید جانزش را به معبد برسونه. جوونه غریبه از حرف‌های شاهزاده خوشش اومد و هر دو شونه به شونه هم به راه افتادن. سفرشون نزدیک به یک سال طول کشید تا به عبادتگاه رسیدند. اونها از های گوناگونی گذشتند یه روز خسته و نیم گرسنه به شهری بزرگ رسیدند هر دو به هم گفتند بهتر مدتی و اینجا بمونیم و استراحت کنیم بعد دوباره به راه بیافتیم. اونها نزدیک قصر پادشاه اتاقی اجاره کردن و اسباه و وسایلشون رو به اونجا بردند از غذا صبح روز بعد پادشاه اون کشور به محتابی قصرش در اومد و دو جوون رو توی باغ دید. اون با خودش گفت خدای بزرگ چه جوانهای واقعا دوست داشتنی و زیبایی. اما یکی از یکی زیباتر و خوشندام دلم میخواد که دخترم رو به همسریش در بیارم. و راستی که پسر پادشاه از نظر زیبایی و خوشندامی از دوستش سر بود. پادشاه برای پیشورد نقشش هر دو جوون رو برای صرف غذا به قصر دعوت کرد. با ورودشون به قصر پادشاه در نهایت مهربونی از اونها پذیرایی کرد و دنبال دخترش فرستاد که از خورشید بر روی هم زیباتر و دل بود. وقت خواب به دستور پادشاه به جوون قریب نوشیدنی زردناکی دادند که ظرف چند دقیقه جام به جانا فرین داد. پادشاه فکر کرد اگه دوست پسر جوونی که زیباتره از هر راه برداشته بشه دیگه دست از سفر بر میداره و چه قشم مونه و با شاه دخت ازدواج میکنه. صبح وقتی پسر پادشاه بیدار شد از خدمتکارا پرسوجو کرد که دوستش کجاست. را ندیده بود. به اون گفتند دوست دیشب ناگهان مرد و قراره که امروز به خاک سپرده بشه. شاهزاده از جا بلن شد و فریاد کرد حالا که دوستم مرده پس نمیتونم بیش از این اینجا بمونم حتی نمیتونم یک ساعت از وقتم رو توی این قش بگذرونم پادشاه با تعجب گفت نه دست از سفرت بردار ا همینجا بمون تو رو داماد خودم میکنم شاهزاده پاسخ داد نه نمیتونم بمونم از شما تقاضا میکنم ما نه، رفتنم نشید اسبی خوب به من بدید و بذارید با خیال راحت از اینجا برم. وقتی نظر پدر و مادرم رو به جا آوردم و با دخترت ازدواج می کنم. پادشاه که دید هیچ چیز نمیتونه جلوی پسر جوون رو بگیره دست رو داد که اسبی براش آماده کند. شاهزاده سوار شد و جنازه دوستش رو روی زین اسب انداخت و با سرعت رفت. اما بدونید که پسر جوان هنوز نمرده و بر سر نوشیدنی زرناک به خوابی عمیق فرو رفته بود. وقتی پسر پادشاه به اوادتکاه سنت جیمز رسید، از اسب اومد پایین. جنازه دوستش رو که انگار بچهش هست روی دستاش گرفت و جلوی مهراب به زمین گذاشت و گفت: ای جیمز مقدس، من از پدر و مادرم رو ادا کردم. من با پاهای خودم به زیارتت اومدم رو دوستم رو هم آوردم. اون رو به دستات می تقاضا میکنم که اون رو به زندگی برگردونیم اون با اینکه مرده باز هم نظر خودش رو عدا کرده و از اجایه به روزگار بیا و ببین اون در حالی که نیایش می دوستش تکونی خورد و از جا بلند شد و سالم و تندرست در کنار شاهزاده ایستاد هر دوشون به درگاه خدا شرگ گذاری کردن و بعد از مدتی اقامت توی اونجا رو به خونه راه بازگشت رو پیش گرفتند وقتی به همون شهر رسیدن که پادشاه دعوتشون کرده بود به خونه کوچیکی که نزدیک پادشاه بود رفتند خبر ورودشون خیلی زود همه جا پخش شد پادشاه از اینکه دیشاه سادی جوون زیبا رو دوباره بازگشته از شادی توی پوست خودش نمی‌گنجید اون دستوره بعد پای جشن باشکوه داد. چون ظرف چند روز دخترش با پسر پادشاه پیوند همسری میوست این خوشبختی بزرگ فراتر از حد تصور پسر جوون بود وقتی مراسم ازدواجشون به پایان رسید اونا چند ماه شاد و دلخوش در قصر زندگی کردند سرانجام روزی پسر پادشاه گفت مادرم چشم به راهه و با نگرانی دلواپسی بازگشتم رو انتظار میکشه. پیش از این نمیتونم اینجا بمونم. فردا همراه همسرم و دوستم به زادگاه هم برمیگردم. پادشاه هم با رضایت خاطر قبول کرد و دستورهایی داد تا همه چیز برای سفرشون آماده بشه. حالا بدونید که پادشاه از ته قلبش به طرز عجیبی از پسر جوان ای که یک بار سم کرده بود تا به هلاکش برسونه اما دوباره به زندگی برگشته بود معلوم نیست که به چه دلیل بیش از اندازه نفرد داشت این بار هم برای اون زهرش رو بریزه بران شد که پسر جوون رو با پیغامی به نقطه دور دست بفرسته تا هر طوری که شده اون رو از دوستش پسر پادشاه دور کنه اون گفت تو خیلی فرز و تند و تیزی پس دوستت پیش از ترک اینجا منتظرت میمونه که برگردی جوون به پهلوهای از کوبید و به تاق پیش رفت. اون باید پیغام پادشاه رو چه زودتر تحویل میداد. همینکه همین که پسر جوان دور شد، پادشاه به اتاق شاهزاده رفت و گفت اگر همین حالا حرکت نکنید، به جایی که باید شب اردو بزنید به موقع نمی رسید. پسر پادشاه پاسخ داد، من بدون دوستم جایی نمیرم." پادشاه گفت، اون ظرف یک ساعت دیگه بر و من بهترین اصر رو در اختیارش میذارم. مطمئن باش که به موقع به تو میرسه. شاهزاده به خودش قبولوند که همین کار رو بکنه. اون از پدر زنش خداحافظی کرد و همراه همسرش رو به کشور خودش برافت داد. در این زمان دوست بیچاره نتونست وضیفش رو در زمان مقرر که پادشاه تعین کرده بود انجام بده. وقتی به قصد برگشت پادشاه گفت دوستت خیلی وقت پیش به راه افتاده، اما نباید خیلی دور شده باشه. دنبالش برو، شاید به اون برسید. مرد جوان تعظیم کرد و از حضور پادشاه مرخص شد و پیاده به سمت دوستش رفت. از در اختیارش گذاشته نشده بود. اون شب و روز دویی تا سرانجام به جایی رسید که شاه چادرهاش رو برافراشته بود. اون با سراوزی در هم و بر هم لباس های پارو، سرت و سرتاپا گلالود خودش رو به شاهزاده رسون. دوستش شادمانه به اون خوش آمد گفت و اینگاه که برادرشه با مهربونی از اون مراقبت کرد. سرانجام به قصر رسیدن و هم ملکه از زمانی که پسرش برای زیارت رفته بود در حالی که منتظر برگشتش بود لحظه ای دست از رسیدگی به امور کشور بر نداشته بود. اون با دیدن دوباره پسرش چیزی نمونده بود که از شادی و خوشتلی غالب تایی بکنه ملکه بعد از مدتی خوشوبش با پسرش متوجه دوست بیمارش شد و دستور داد که بستری مناسب براش آماده کنن و دنبال همه پزشکا تو سراسر کشور بفرستند پزشکها وقتی پیغام ملکه را شنیدند از تمام مناطق دسته دسته به دربار وارد شدند اما هیچ کدام نتونستن جوان بیمار رو درمان کنند. برخلاف که همه تلاش کردن و تو کارشون کاری از پیش نبردند، خدمتکاری به پیش اومد و به ملک گفت که پیرمردی غریبه به دروازه قصر اومده و اعلام کرده که میتونه جوان رو به مرگ رو نجات بده. اون پیرمردی پارسا بود که در باره مطالبی شنیده و برای کمک به قصر اومده بود. از غذا توی همون موقع شاهزاده پدر فرزندی دختری شد. اما اون به درگیر بیماری دوستش بود که اصلا وقت نکرده بود بروه و نوزادش رو ببینه. اون به خودش اجازه نمیداد که از کنار بستر دوست بیمارش تکم بخوره. در حالی که بالای سر بیمار خم شده بود پیرمرد مرد پارسا به اتاق اومد. اون از شاهزاده پرسید سرورم، دلت میخواد که دوستت بهبود پیدا کنه؟ چقدر حاضری برای این کار بپردازید؟ شاهزاده پرسید چه مبلغی برای درمانش هرچی بخوای میپردازم؟ پیرمرد مرز گفت پس خوش کن. امشب دختر نوزاد رو به اینجا بیا رو سیاه رگش رو بزنه و خونش رو روی زخم های دوستت بمان. اون بهبود پیدا میکن و فوراً خوب میشه. شنیدن این حرفها چهار ستون بدن شاهزاده رو به لرز انداخت. اون وحش از زده فریاد کشید. براستی که هر پدری فرزند نوزادش رو از جون خودش بیشتر دوست داره. شاهزاده پاسخ داد. سوگن خوردم که برای بهبود حال دوستم دست به هر کاری بزنم. اون برام مثل برادره. اگه چاره دیگه برای درمانش وجود نداشته باشه پس فرزندم رو قربونی میکنم شب از راه رسید و تاریکی به همه جا چادر کشید. اون فرزندش رو به بارین دوست بیمارش آورد و سیاه رو زد و خونش رو به زخم‌های جوان بیمار رو به مرگ مارید. چهره مرگ از چهره دوستش رخت بربست و کم کم جون و توان در وجودش راه پیدا کرد و بار دیگهی چهره زندگی رو دید. اما نوزادش رنگ چهرهش رو باخت و سفید و بی حرکت شد. انگار که دیگه مرده بود بدن بی جون فرزند رو در قهواره گذاشتن و همه به تلخی گریه کردن. صبح که از راه برسه بدنش به خاک سپرده بشه دیگه نشونی از اون باقی نمیمونه. خوشید که از دریچه خاور سر براورد پیره مرد پارسا بازگشت و حال جوون بیمار رو پرسید. شاهزاده گفت حالش از هر نظر خوب شده پیرمرد پرسید اما طفل نوزادت کجاست پدر قمگین گفت اون توی گهوار است اما دیگه جونی تو بدن نداره پیرمرد پارسا گفت یک بار دیگه نگاهش کن وقتی به گهواره نزدیک شدن و پارچه رو کنار زدن بچه که لبخند میزد و دیدن پیرمرد گفت من سان جیمز اهل لیزیا هستم برای کمکت اومدم چون متوجه شدم که تو دو دوست واقعی هستی از حالا به بعد همگی شاد زندگی کنید و روزگار رو به شادی بگذرونید اگه دچار گرفتاری شدید دنبالم بیایید. کمکتون میکنم تا با هر دشواری و مشکلی چیره بشید اون با گفتن این حرفها دستاش رو به نشونهٔ دعای خیر بالا برد و بعد از مدتی ناپدید شد اونها پیرو و وفادار شدن و به دستورهاش عمل کردند همه گی خوشبخت و خورسند بودن و تلاش کردن تا مردم کشور هم خوشبخت و خورسند باشن. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهر را میز زفر کنین؟ جایی که پری ها و کتوله ها زندگی می کانال هزار همونیه که دنبالش که جایی که